سلام مرزو کنم خدمت شلوارندگان عزیز من شریفی هستم به این قسمت از پادکست واقع من خوش آمدید در این قسمت در مورد داوری صحبت می کنیم باق شده است که در قرارداد ها می نویسند که اگر اختلافی حاصل شد به داوری می رویم سوال می شود این چه معناهی دارد؟ معنیان این است که شما اگر به اختلاف بخورید در این قرارداد که حالا می تواند قرارداد ساخت و ساز باشد، قرارداد خرید و فروش باشد به جای آن که به دادگاه بروید، به داوری میروید. ممکن است یک نفر داور را همان موقت تفاخش کنید و نامش را بنویسید. ممکن است بگوید که هر کداممان وقتی اختلافیجاد شد یک داور انتخاب میکنیم و آن دو داور یک داور سه برابر انتخاب میکنند و ممکن است اسم یک مرجعی را که داوری میکند بنویسی. خب آنچه که با من اطلاع کلی باید بدنیم آن است که شما وقتی این کار رو میکنید، اگر یک داوری را انتخاب میکنید، به صورت یک نفره که هردو آن شخص رو مثلاً قبول دارید، یه جایی که هر کدام از تان در صورت بروز اختلاف یک نفر انتخاب میکنید و اجازه میدهید که منتخبین شما یک نفر است و مرا انتخاب کنم، باید بدانید که یه کار پر ریسکی رو انجام میدهید. چرا؟ چون باید آن شخصی که انتخاب میکنید رو اعلام اصول به موضوع قرار داده تان وقف داشته باشه. یعنی مثلاً اهل فن باشد حداقل. بسلا نگر کاله خاص را خرید و فروش میکنید، از نهای خرید و فروش آن کالا و اورفاها که برای خرید و فروش اطلاعات داشته باشد. آیا داوری رفتن کار خوبی است؟ نمیتوانیم توصیه کنیم که به داوری بیروید، نمیتوانیم توصیه کنیم که به داوری نروید. ولی به هر حال رایی که داور میدهد قابل اجراست. مگر اینکه کسی که متدی باشد که این رای را من قبول ندارم. یا به زیان من است برود و بوتلان آن رای را بخواهد. این جاست که دیگر باید به متخصص هوایی مراجعه کرد. یعنی توسعه کرد می شود که شخصان در این زمینه اقدامی سردر نگیرند. هنی هدفمن با یک متخصص هوایی مشورت می شود. پس آنچه در اینجا گفتیم آن است که آیا می توانیم در قرارداد خود داوری بگذاریم و من آن را فهمیدیم یعنی چه بله می توانیم بگوییم وقتی اختلافیجاد شد به جاییان که به دادگاه برمییم می توانیم نزد این شخص معین برمییم یا به آن شکلی گفتم یک تیمه سه نفره داوری داشته باشیم. آیا این داور واحد یا انهیت میتوانند مثل قاضی رعی بدهند؟ بله میتوانند مثل قاضی رعی بدهند. هگر رعی که سادر کردند را رو... به طرف اطلاع دادیم که با آن ابلاغ می گویند آیا طرف می تواند از اجرای آن خودداری کند؟ خیلی باید آن را اجرا کند اگر خودداری کرد ما چه کنیم؟ اینجاست که از دادگاه باید کمک خواست که آن را اجرا بشود باست هم در اینجا باید با متخصص حقوقی مشورت بشود آیا رایی ای که داوردادست را می توانیم با آن اعتراض کنیم؟ بله مرجع اعتراض آن کجاست؟ دادگاه هست که باز هم در اینجا حتماً با یک متخصص حقوقی باید مشورت بشود پس وقتی شرط داوری در قرارداد می خواهیم بگذاریم یا دران قبلاً گذاشتن و به آن قرارداد را می دهن که امزا بکنیم بهتر است در خصوص این موره حتماً فکر کنیم و اگر تردیدی داریم حتماً با یک متخصص حقوقی مشورت بکنیم